درود و ساعت سلام به یاران همیشگی رادی البرز عناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو خدمتون عرض میکنم گارد ساحلی لیبی هفته گذشته در مجموع 1131 پناه از آبهای این کشور در نزدیکی سبراته گرفت آنها در چهار قایق بادی و سه قایق چوبی قصد داشتن با گذشتن از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند این پناهجوان در بازداشتگاهی فرستاده می شوند که به خاطر شرایط انسانی و نقض گسترده حقوق بشری زیر انتقادند یکی از این پناهجوان گفت من در صبراته زندگی می کنم 300 دلار دادم که مرا از لیبی به ایتالیا ببرند دوازه نیمه شب را افتادیم و 20 ساعتی در میان آبها بودیم در پی بسته شدن مسیر ترکیه یونان بر روی پناهجوان لیبی به مرکز اصلی اعزام پناهجویان به اروپا تبدیل شده است. قاچاقچیان هم اغلب با دریافت ها آنها را سوار قایخ های فاقد ایمنی روزانه دریا میکنند. طی سال گذشته بیش از 4500 پناهجود تومه دریا شدند. در همین حال رهبران اروپا روز جمعه تئ نشستی در مالت به لیبی پیشنهاد کردند که در اعضای محدود کردن موج ورود پناهجویان کشورهای شمال آفریقا کمک های مالی و غیره در اختیار لیبی قرار خواهند داد گرچه لیبی هنوز پاسخ روشنی به این پیشنهاد نداده اما این تر انتقادهایی را به همراه داشته است به گفته منتقدان طرح مذکور پناهجویان را بیشتر در معرض خطر و سو استفاده قرار میدن لیبی در حال حاضر مهمترین مسیر پناهجویانی است که برای فرار از شرایط دشوار در کشورهای زده آفریقایی و خاور میانه میخواهند خود را به اروپا برسانند در این کشور آشفته و از هم پاشیده خوشونتهای غیرقانونی و نظاممند در قبال پناهجویان به روالی عادی و روزمره تبدیل شده است. ادعی از آنها در بازداشتگاه موقت و در شرایط سخت و غیرانسانی به سر میبرند. وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه در اردوگاه پناهجویان واقع در هلینیکون در نزدیکی آتن به گرمی استقبال نشد. دها از پناهجویان در اعتراض به وضعیت نابسامان زندگیشان دست به تظاهرات زدن و تلاش کردند مانع ورود او به اردوگاه شوند با این حال وزیر مهاجرت توانست در نهایت در میان حیاهوی پناهجویان به اردوگاه وارد شوند و یه خبر از گرجستان گرجستان از مدتها پیش به دنبال نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا بود وجسان حدود 9 سال پیش در یک جنگ پنج روزه با روسیه درگیر شد این کشور از آن زمان تا کنون با چالش چالش تلاش روسیه برای افزایش نفوذ بر این کشور مواجه است طبق قرارداد شنگن که در سال 1985 امضا شد شهروندان کشورهای عضو این قرارداد اجازه پیدا کردند که درون مرزهای کشور خود تردد و رفت و داشته باشند گردستان یکی از است که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار داشته و یکی از اهداف مقامات سیاسی تفلیس پایتخت گردستان عضویت در اتحادیه اروپا و ناتوست که گردستان در حال حاضر عضو ناظر در اتحادیه اروپا و ناتو می باشد و همکاری های زیادی با این دو سازمان دارد لازم است متذکر شوم که کلیه قوانین گردستان مانند قوانین اتحادیه اروپا می باشد. پارلمان اتحادیه اروپا با اکثریت آرا کشور گرجستان در, در شمال غربی ایران را به عضویت پیمان شنگن پذیرفت و به این ترتیب به عنوان 27مین کشور به کلوب کشورهای عضو محدوده شنگن پیوست. گرجستان نخستین و تنها کشوری از جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد و در دو قاره آسیا و اروپا و تنها کشور در قاره آسیا که موفق شده است به درجی از اعتبار برسد که به عضویت پیمان شنگن در بیاید این یک پیروزی بزرگ برای رهبران این کشور 7.5 میلیونی به شمال می میرود کوزستان در راستای نزدیک کردن خود به اتحادیه اروپا با عضویت کامل در این اتحادیه تقریبا تمامی قوانین خود را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ کرده است گزستان همچین یکی از مقاصد توریسی مهم برای ایرانیان نیز یکی از دلایلی که اخیراً ایرانی‌ها سفر بیشتری به این کشور دارند خدماتی است که دولت کورجستان برای گردشگران ایرانی در نظر گرفته است گردشگران ایرانی نیاز به عقص ویزا قبل از سفر ندارند و می از مرز زمینی یا فرودگاه با پرتاخت هزینه اندک و به راحتی ویزا عقص کرده و وارد کشور کورجستان شوند یک خبر دردناک از یک نوجوان افغان نوجوان دان، نوجوانان دانمارکی یک چهار نوجوان دانمارکی یک نوجوان افغان را آتش زدند مقامات پلیس دانمارک از دستگیری چهار نوجوان دانمارکی خبر میدن که قصد داشتن یک نوجوان افغان را زنده زنده بسوزونن. مقامات پلیس میگویند این نوجوان که این نوجوانان که همگی دانمارکی و اصل هستن بین 15 تا 16 سال سن دارن. بر اساس گزارش ها این چهار نوجوان با ریختن بنزین بر روی این نوجوان افغان و آتش زدن به جراحات شدیدی را بر وارد کردند. و حال عمومی نوجوان این نوجوان افغان همکنون وحیم گزارش شده این حادثه روز دوشنبه در شهر بسیار کوچک قی از توابع آوز در ساعت 7 بعد از ظهر رخ داده است دادگاه بدوی متهمان اصلی پرونده چند روز پیش در, در پای بسته در شهر هورسن برگزار شد مقامات پلیس ادعای نجات پرسی در این ماجرا را رد کردند اما تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد به گفته مقامات پلیس مستندات و مدارک کافی بر مبنه. مبنی بر اینکه این حادثه بر اثر اختلافات قومی و ملی باشد وجود ندارد یک خبر از استرالیا فیجی یک پناهنده ایرانی را که به جزیره مانوس از را به جزیره مانوس کرده فیجی یک پناهجوی ایرانی را که از اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس در پاورا گینونو گریخته و قصد پناهندگی در این کشور را داشت بازداشت کرده و به جزیره مانوس بازگردانده است این پناهجوی ایرانی که لغمان سواری نام دارد اخیرا برای درخواست ویزا حمایت به فیجی رفته بود اما به گفته ای مقامات دولتی فیجی او را در مدت ده روز که باید تقاضای ویزای خود را ارائه از اقدامات خودداری کرده است با این حال وکیری این پناجوی 21 ساله که در هنگام بازداشت او در خارج از سواو پایتخت فیجی او را همراهی میکرده گفته است که موکلش قبل از اینکه بتواند در درخواستش را تسلیم مقامات مهاجرتی فوجی کند بازداشت و به جزیره مانوس برگردان شده است آقای سواری سه ساله اخیر را در اردوگاه مخصوص مردان در مانوس تحت تدابیر سختگیرانه مهاجرتی استرالیا به سر خبرگزاری یورو در گزارش خود در این زمینه یادآوری کرده که پس از سه سال سیاست های دولت استرالیا در مورد ترد پناهجوان که اعتراض سازمان ملل را به همراه داشته آقای سواری میتوانست اولین پناهجویی باشد که از کشوری سال درخواست ویزای حمایت کرده باشد استرالیا آقای سواری را در اوت سال 2013 پیش از سه سال پیش به اردوگاهی که مانوس. تنها ویژه وی مردان از فرستاده بود و آنطور که خبرگزاری ها گفتن نهایتا با درخواست پناندگیش در پاوگین نو موافقت شده و او زندگیش را در خارج از اردوگاه ادامه داده است. با این حال او گفته که از سوی ساکنان محلی مورد آزار و عذیت قرار گرفته و مختهی هم از سر فقر در خیابان زندگی کرده است لباتون خندون دلاتون شاد تندرستیتون پایدار به یک تا